خدا دکتر خدا هستم دکترای تخصصی سلامت بالوری و عضو هیئت علمی دانشکوه پزشکی شهید بهشتی با مجموع پادکست های آمادگی برای زایمان و زایمان فیزیولوژیک در خدمت شما عزیزان هستم در این اپیزود میخوام در رابطه با مکانیزم ایجاد درد زایمان با شما بزرگواران صحبت کنم طبق تعریف جمعیت بینال مطالعات درد در سال 1996 درد عبارت هستش از احساس ناخوشایند و تجربه حیجانی که همراه هستش با آسیبهای بلقوه یا واقعی به بافت. درد یک احساس کاملا متمایز از لمس، گرما و سرما هستش که سبب تغییر رفتار در افراد میشه. احساس درد یک فرایند بسیار پیچیده هستش که در اون هم سیستم عصبی و هم سیستم اندوکرین یا همون هورمونی درگیر میشن. زایمان هم یک پدیده فیزیولوژیک و طبیعی هستش که با درد همراه هستش. اینکه چرا زایمان با درد همراه هستش میتونه علل متفاوتی داشته باشه. یکی از دلایلی رو که برای درد زایمان مطرح میکنن، این هستش که درد زایمان میخواد مادر رو از زمان زایمان آگاه کنه و به اون اطلاع بده که زایمانش نزدیک هستش و باید هرچه سریتر خودش رو به یک مکان امن و مناسب برای تولد نوزادش برسونه. علت دیگری رو که برای درد زایمان مطرح می‌کنن این هستش که به دنبال درد و در پاسخ به درد افراد حرکات پیچ و تابداری رو به خودشون میدن. مادر هم در طی فرایند درد زایمان حرکات پیچ و تابداری را به لگن خودش میده که این حرکات نقش بسیار مهمی رو در چرخش داخلی جنین و نزولش به همراه داره علتهای دیگری رو هم برای درد زایمان مطرح میکنه. از دیگه ای که برای درد زای ما مطرح میشه این هستش که درد زای ما ناشی از انقباز عضله رحم هست و این انقباز باعث میشه که خونرسانی رسانی و اکسیجن رسانی کمتر به بافت صورت بگیره و باعث بروز درد بشه همچنین پایین اومدن جنین و فشار سر اون به ستون فقرات و محل خروج اعصاب اون ناهیه باعث میشه که مادر احساس درد داشته باشه. اما نکته جالب توجه در اینجا این هستش که بعضی از زنها نه تنها زایمان رو دردناک تلقی نمی کنند بلکه اون رو نوعی لذت، همانند لذت جنسی یا همون اورگاسم هم می دونن. حالا من یه سوال از شما دوستان دارم که چه اتفاقی میفته که مادران یه طیف وسیعی از حیجانات و احساسات و درد رو در روند زایمان طبیعی درک میکنن. بعضی از مادران نه تنها از زایمان خاطر دردناکی رو به یاد ندارن بلکه از اون به عنوان شیرین ترین و گواراترین لحظه زندگیشون یاد میکنن. اما در جای دیگه مادرانی هستند که به شدت از درد زایمان شاکی هستند به گونه که هیچ وقت دیگه حاضر نیستند که درد زایمان رو تجربه بکنن با مجموعه اپیزودهای ما همراه باشید تا به این سوال ها پاسخ بدید